بسم الله الرحمن الرحیم برام خداوند بی اندازه نهایت باره برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم تا خداوند از کوتایی هایی که در گذشته از تو به عمل آمده یا در آینده به عمل خواهد آمد درگذرد و نعمت خود را به تو تمام کند و تو را به راه راست ره شود و تا را به پیروزی نیرومندی پیروز گرداند هم اوست که در دلهای مؤمنان آرامش فروفرستاد تا با ایمان خیش ایمانی بیافزایند لشکرهای آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند دانا و با حکمت است تا مردان و زنانی را که ایمان دارند به های داخل گرداند که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد و در آن جاودانه به برند و تا از ایشان به هایشان را بزداید و این در نزد خدا پیروزی بزرگی است و تا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که با خدا گمان بد می برند مجازات کند بر ایشان گردش بد حوادث و سختی روزگار مسلط باد خداوند بر ایشان خشم کرد ایشان را لعنت نمود و برایشان برای آتش دوزخ را آماده ساخت و دوزخ چی بد جایی بازگشت است لشکرهای آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است بیگمان تو را به حیث گواه بشارت دهنده و اختار دهنده سرستازی تا به خداوند و پیانبر او ایمان آوری. و دین او را یاری دهید و او را تعظیم کنید و در صبح و شام او را به پاکی یاد کنید بگمان آنانی که با تو بایت می کنند در واقع با خدا بایت می کند ید خداون بالای دست است پس هر کسی که پیمان خیش را نقض می کند بگمان به زیان خیش پیمان شکنی می کند و هر که عهدش را با خدا افا کرد به زودی برای او پاداش بزرگ می دهد به زودی تخلف کنندگان از بادینشینانی شینانی به تو خواهند گفت ما را اموال ما و خانواده های ما از اشتراک در این سفر بازداشت از این رو برای ما آمرزش طلب کن ایشان چیزی را به زبان خود میگویند که در دلهایشان نیست بگو اگر خدا بخواهد به شما زیانی برساند یا بخواهد با شما سودی برساند کیست که برای شما از اراده خدا چیزی را معنی گردد. آره خدا هند به اعمالی که انجام میدهید آگاست واقعیت این است که شما گمان کردید که پیامبر و مؤمنان به خانواده های خیش هرگز بر نخواهند گشت و این امر به دلهای شما زیبا جلو داده شد و گمان بد کردید و شما مردم تباه شبینده بودید و کسی که به خدا و پیامبری او ایمان نیاورد پس برای کافران آتش فیروزانی را آماده کردید. پادشاهی آسمانها و زمین از آن خداست. هر که را بخواهد میامرزد و هر که را بخواهد مجازات میکند و خداوند آمرزنده و مهربان است. وقتی که با سوی غنیمت حرکت کنید تا آن را بگیرید مخالفان فورا میگویند به ما اجازه بدهید که شما را پیروی کنید. ایشان می کلام خدا را تبدیل کنند بگو هرگز به دنبال ما نیایید خداوند از پیش چنین گفته است و خواهند گفت بلکه به ما هسد می ورزید واقعیت امر این است که ایشان درک نمی کنند جز اندکی پس به متخلفان از بادی نشینان یعنی بگو به زودی به سوی قوم فرافنده می شوید که نیروی سخت جنگی دارند که با ایشان جنگ می کنید یا آنکه مسلمان شوند اگر فرمان بردید خداوند شما را مزد نیک می دهد. و اگر روگردانی دید همچنان که پیش از این رو دید شما را به عذاب درناک مجازات می کند برنابینا هرج نیست و نه هم بر لنگ حرجیست و نه هم بر بیمار حرجیست یعنی اینها مجبور نیستند به جنگ اشتراک کنند. هر کس که خداوند و با پیانبر او را فرمان برد خداوند او را در باغهای جاگزین می سازد که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد و هر کس که رو می گرداند خداوند او را به عذاب درناک مجازات می کند. بیگمان خداوند از مسلمانان خوشنود شد هنگامی که با تو در زیر درخت بعیت کردند و چیزی را که در دلهای ایشان بود میدانست از این رو بر ایشان آرامش فروش و ایشان را با پیروزی فوری پاداش داد و نیز به غنیمتهای بسیاری که بدست می آورند و خداوند صاحب قدرت مونی و با حکمت است خداوند با شما غنیمت های زیادی را وعده داده است که آنها را به دست می آورید و این را به شما به زودی فراهم کرد در عین حال دست مردم را از شما باز داشت تا این برای مؤمنان نشانه باشد و تا شما را برای راست ره کند و نیز پیروزی ها و غنایم دیگر است که شما بر آن دست برد نزدهید ولی خداوند بر آن احاطه کرده است و خداوند بر هر چیز تواناست اگر کافران با شما جنگ می کردند یقیناً عقب نشینی می نمودند و در آن وقت نه حمی داشتند و نه هم مددگاری این است روش خداوند که در گذشته جریان داشته در روش خداوند هرگیز تغییری نمی هم اوست که در داخل مکه دستشان را از شما و دست شما را از ایشان باز داشت بعد از آنکه شما را بر ایشان پیروز گردانید و خداوند به آنچه می کنید بیناست هم ایشانند که کافر شدند و شما را از داخل شدن به مسجد حرام باز داشتند و رساندن هدیه را به جای مشخص آنمانی شدند و اگر این ترس موجود نمی بود که مردان مسلمان و زنان مسلمان هستند که شما ایشان را نمی شناسید و مبادا آنها را پایمال کنید و شما به نسبت این آسیبی که بر ایشان وارد می شود ناآگاهانه مرتکب زیانی یعنی گناهی می در آن صورت خداوند به شما اجازه می داد که از راه استعمال قوه داخل مکه شوید. و تا خداوند هر کسی را که بخواهد در رحمت خیش داخل نماید اگر مؤمنان خود را کنار می کشیدند، کسانی از ایشان یعنی اهل را که کافر شدند، به عذاب دردناک عذاب می کردن. در آن فرصت که کافران در دل خود ننگ را ننگ جاهیت را نیرومن گردانیدن خداوند آرامش خیش را بر رسول خیش و مؤمنان فرو فرستاد و برای ایشان کاربرد تقوی را لازم گردانید کار ایشون به کار برد تقوی از هر کسی دیگر سازاوتر بودند و اهل آن بودند و خداوند به هر چیز داناست. حقا که خدا این خواب پیانبر خود را راست گردانید که اگر خدا بخواهد واکن به امن و آرامش و بدون خوف به مسجد حرام داخل می شوید. در حالی که موهای سرهای خود را بعد از بجا کردن مراسم عمره میتراشید و کوتا کنید پس خداوند آنچه را که شما نمیدانستید میدانست و پیش از این و پس از بسر رسیدن این رویا پیروزی نزدیکی را به شما میسر گردانید اوست که پیانبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و خداوان به حیث شاهد کافیست محمد پیانبر خداست و آنانی که با او هستند در برابر کافران سخت و قوی و در میان خودشان مهربانند همواره ایشان را روکو کنان و سجده کنان میبینی و فضل و خوشنگی خدا را جویند نشانه هایشان در روهایشان از اثر سجده آشکار است این از صفتشان در تورات و صفتشان در انجیل همانند دانه تخمی که جوانه خود را بیرون آرد، سپس آن را نیرومند گرداند و باز سخت شود و بر ساخه خود استوار گردد، به حدی که کشتمن را نمو و بزرگ شدن شگرف و بیدرنگ آن به شگفت می آرد. تا خداوند با وسیله این پیشرفت بیدرنگ ایشان یعنی کافران را به خشم آرد، خداوند آنهدا از ایشان را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به آمرزش و پاداش بزرگ وعده داده است